اتضافه شده هنوز جایه هم باقی مثال از شد برمون شهر چند تا مطلب رو در این یعنی باره فرمودن یکیش رو گفتیم حالا برایش هم اشاره اجمالی میگه بکنیم یکیش این است که فرمون لا اشکال که وجوب متابعت به قط برای عمل حاله یعنی مسئله اول لزوم عمل به قط لنبون به نفسیدی تریبونه در بابه بعد صلاح آغاز به اسطلاح نفیش رو از او و اصفاتشان تحصید آقاسه این مثله اولی بود که با محل کلام قرار گرفت از کردیم من اوان بود و جیه اصلا در کلام شیخ به برنار یه وجو برمن گرفتن به از است اصلاح اصلاح اصلاح اصلاح اصلاح مجموعه نوینی و ظواهر فراز معمولی شیرازی که شاید مرو شیخه معلوم میشه که همان و عقایدی دیگه اینها از آثار اون که ذاتیه از خود تریحیته یعنی مجموعه نوینی میفرماید چه این که از ذاتیشه چون بودجیه این تریحیت این تریحیت ذاتیه که و از اون این است که انسان عملش میکنه شون واقع رو میبینه لذا به واقع عمل میکنه پس اونی که ذاتی قطعه در حقیقت همین طریقی هست یه مثلا که تو اینجا خوندیم یه این مثلا میگه باز مدمون شیخ برده این مطلب دارم و اون اینکه که لذا قط و قط اصلاح قجب نمیشه چون به تغییر ایشان بوجه هده وسطه مثل مثلا تغییر الان آدم متغییر کلومتغییر حادث فر آدم عالم حادثون به اصطلاح آماییان حد وسط برای اصبات اکبر برای حسکر اکبر یعنی حادثون حسکر هم که علا آدم این تغییر هم حد وسط تغییر این تغییر مرگون شیر رزوان الله دارده خب چرا چون نمیتونه بگیم ها مقتول خمریه و کلو مقتول خمریه اجیبال اجتنابه هست نه کلو خمره نیه اجیبال اجتنابه هست نه مقتول خمره لذا فرموز اطلاق و قدجت به اصطلاح برقرس نمیشه گفت البته ایشون در کلمه اصطلاح تفسیر نکردن مرایلان از اصطلاح کی که بعضها این تفسیر شده اصطلاح نهل میزان یا منکری ها الا در سران میشه در سران در امارات میشه گفت خجت این محناتون واسطه میشن مثلا این حاضر مقامت البیانه علا خرمته علا نجازتیه مثلا و کل مقامت البینه علا نجازته از اونو خارمه نیست ایشون خرمدن بر امارات و خجت میشه عنوان خجت و امارات و به اصطلاح اون چیزی که شرحن بجته میشه عنوان بجت رو اطلاح بعد و در ما از مطلب ثبوتی دارم کشکن بعد از این بر توضیح بیشتر داره اخسام حالا اینجور یک هستن شد اگر پس نحوه موضوعی باشه بعد اثر بار میشه مثلا اگر اون مفتول خمری یک بر اصطنابار و میتونیم حالا مفتول خمریه و کل مفتول خمریه یک بر اصطنابار ها یک این خودجه بید این با عنوان محقق موضوع یعنی مثل این حالا وقت تو در اینجا محقق موضوعه اون یه جبال اجتنابه این خودجه باید هم سلط نمی کنید در واقعه حکم هست اما نه از باب خودجه قد در اینجا تاثیر دارد از باب اینجا موضوع تحقاق بزنه این به چهار مطلب بود که مرگون شیف در اینجا برمودن که ما بیشتر مطلب اولیشون رو خوندیم بین که مراد از خود جیفقت چیه؟ آیا همون لزوم عمله که اول کلام میشونه؟ آیا طریبیت و کاشفیت که ظاهر کلمات شیفه؟ و یا آیا به تغییر مرموازی که دیروز خوندیم اون صحت کاشفیتی که داره به دفاظ واقع کانی انتظاره؟ نا واقعه تنهایی نه سفر بسنم دید. یا به دوازه همون سفر این وجود این سفر منجده سر و تنجده را در از قلچیگه همون است که ما از شیعه نحوه روشند در بینیمون میبینیم منشه قلچیگه و تنجد همون صورته این توضیحاتی بود که یه روز من من در کلماتون اجمالا از کردم در کلمات مرموم از دسته الله ها نفسه نه مطلب دیگه این معلوم ناقی دارم دخونیم اون دسته مطلب دیگه شیخ را هم متعرض شده تا برده حالا این بحث ها تا این مقضا رو شیعی تحصیل داره یا نه حالا چه اصلا هستم برای اینکه گاهی در خلال این بحث ها نکات فنی خوبی وجود داره انشاءالله حالا من می که به این جایی از ترین مرمون اول فرمزن که مراد در موجوب مطابعت خط موجوب مطابعت, مطابعت مطوری نه خود و اینم موجوب هم, هم شرعی نیست من رو این موجود این فرمزه از مجموعه فرامات شهر که این موجوب همه شرعیه لن طریقی تلقه زادی تون لن لا تنابهاید و تشریح بعد ایشون فرموزن اینه بله تشریع اما به و حاسبان به تعبیر تربیر منجهل از کردن یادش تربیر هم با خودجیت منجهله خودجیت یا خودجیت یا خودجیت منجهله مرادشون نه یک دوست نقصه در مرمومه نایمی بعد فرمودن و غیر فرد بین هم به صحت جعل خودجیه و طریقیه تایه خودجیت و, و طریقیت قابل جرد کما باید مختار و بین بعد و علبسته و اندال مجبور حرمش آل انتظار کما مختار شد. این مطلب را شما ندارم که از ما را جهب کنید من این به مناسبتی توضیح هست کردم مرون شیر تمام احکام ورزی را به قابل ج ونی که جذبش تعلق میگیره منشه انتظار شدن این احکام وضعی رو انتظاری میدونن توضیحش هم اخیران اعزی کردن مرادشون اینه که خصولا به لحاظ قامونی نه اینکه به لحاظ لفظی به لحاظ قامونی جذب به امره انتظاری تعلق نمیگیره و احکام وضعی تعلق نمیگیره و اگر جهلی هست در حقیقت اون جهل به منچه انتظارشه چون احکام انتظاری هستن به منچه انتظار جهل تعلق میگید و توضیح همه از ترین مراد این آقایان اینست که حسولاً به دخاظ خود نوفی و قانونی و روح قانونی این طوره نه به دخاظ مشکل تعمیری و اندرگیاتی نه اینکه اصلا اصلاً جزیگی جزیگی قابل جهل نیست به چه محنام یعنی در بوله خانم جزیگر نمیشه چیزی این که به الله رو حتی اگر بله هازه علیه یاد بیره به جلت کرد مثلا که اینی جلت و صورتی جلت هم به سلام یاد میماردن اینی و صورتی. حتی اگر تبیه بیره که من صوره رو جلت داری نماز جلت هم مرا جل میست نمیشه جلت, جلت جزیگر در قابل چیزی نیست جلت داشت الله رو اونی از صورتی این این من که حتی اگر گفتی از توصورتی من به صلاحاتی هم ترم که درمز دارم اگر فقط از این نقطه روز بود با این که در اونی که به شنفر رو میرز این این جزید و این نقطه نقطه خانونی نقطه عددیاتی و یکی از افتان وضیی از افتان وقتی میگه اصلا من خود رو حجت قرار دادم یعنی یه عمل کلام مراد حتی اگر یه جلس رو با حجت هم حجت و, و هم به فرجوی فیالا روحات حتی با هم با ونی که جعل میشه روش تعلق و قانونی یه نفر جوویها، فرجووس، این امر فرجوویها اداره و تأمید این قابل جعل، اونی که جعلش گرفته، میگیره سر، فرج اینه فرجوویها اداره و تأمید سنا، و همچنین که جعلش تعلق میگیره، جای این, این اینه. بلا خب دیگه توی بحث البته این توی تقسیم بندی که ما باید حد خاص داشتیم توی اصلا یک بحث را داشتیم به نه سه اعتبارات قانونی و, و حقیقت اعتبارات قانونی اونجا باز بحث میشون اما فعلا آدم توی یه بحث استثاب این بحث ها بردن رو یه اونجا بردن که انشالله اونجا متعرضی اما مثل مرمون ها اینی بلا حجیت مثل جزئیت این دیگه از حجیت و, و ولایت و اینها رو قابل جهر میزن جزئیت و شرکیت و مانعیت و قاطعیت قابل شرک میدونن اینا حالا من را این بحثیت میشم شونی که اینجور نایمی من این رو شونی بحث حجیت بردادی مرتب تکار خواهد شد من مجبورم که چرا هست مردم نایمی خود حجیت رو قابل جهر میزن خودش چون به نظر ایشان خود جیهت رو مهنده یه تطمیمه خب این باید برورسیت به شکرستن خود خود جیهت یعنی خود مرمونا این تصیل خانومی که از خود میدن مراد این از چی دیره که شاهد خود میده شکی روشن خاصل میشه در مقابل اون زن نخاصل شارع در حقیقت اون زن رو الغام میکنه اون زن اون چهر رو الغام میکنه اون زن رو مثل علم قرارش این اسمش حکیم کشمه <تصفح> که انشاءالله رو عرض میکنی مثلا خواهد آمد که ادهی خوژیه تو محذریت و محجبیت میدونن تطور کشمه میدونن ادهی هم میگن نه اصلا خوژیه جهن مماثله جهن بدنه و مماثله, مماثله الاخه پس این نقطه مرجعش به بحث معروف حقیقت حجیته مثلا اگر قبرواره حجیته یعنی چی یعنی اگر شما از قبرواره هشتا درصد درصم زن تیدا شد اون 20 درصد الهابش بخونه هشتا درصد شد تر درصد اصطلاح نامی در حجیه بیده حسمش تکمی و در مقام اصبات هم به این حدیثی که ایکی از صحیاته حضرت زافرین و حضرت حاضرین و هم معنی از خیلی الان تو زهن میزید لاغذر در حضرت نموالینا یالیت در حضرت نموالینا ما یروی یعنی هم ناسخاتون ها میگه شما جانه داره شرک بکنید پس شرک بردان پس خوجیه از این معنی قابل جهره از از من اونی که قابل جعله تطریمه کشف اون کشف ناقص رو تمام میکنه ولذا این مثل جزئیت نیست که قابل جهل نوشید قابل جهل نیست قابل جهل هم در لسان روایت آمده دید هم خواص سوی باقعه فرز و گفی حالان روار تنخواده شما به انام مجدید هم اون لسانی که در قابل خبر شما رقایت شما هم دارد خبره واحد فرمیدن لا عضو الا عهد من مبادی ناس تشدیل بیمایه بیعن ناس خاطنان رو پس این که ایشون در این جامعه میفرمان خب دقت بکنید کنید بین النبول به سر حت جعلی خجیه و طریقیه چون این صحبت هست چون خود طریقیت قابل جعلی نیست این یعنی انشاءالله برعرض میکنید یعنی به عبارت از اون اخرام مرغوم نادیم بله اگر کلن نباشه قابل جعلی نیست مثل شرک اگر شما شرک دارید میتونید تشت برزن قرار رو کنید کاشو بینادارید. اما کاشف ناقص رو می توانی کامل بکنه این خلاصه یک ای کلام خوشن شد از من مبانی رو میگم مبانی اساسی در اصول این باید شما روش فکر این تا یک ای نتیجه واضح واضحی واضحی برای شما میتدا باشیم پس نایمی معتقل از به خود جیر ورزای جو میگو جو خود جمع مناده میکنم تو یاد نمیگیره. مطلب اینه که حضور رفیق نمیخواد. چه اینطوریه بی غیر طبیعیه طبیعی. این یه قابل جه اندیشه یه کامله. یعنی ایشون مخاطب نمیذید. بله. حضور ناظر. کامله. ایشون میتران بله. کاملا من درکم وا. بله. میگه متعدد. چون ناظر نمیگه ناظرن داره نمیگه. ببینید بحث الان چون نمیخوام وا چون میشه بحث با این واسطه بحث بکنیم مناقشه و خلاصه بحث اینه طریق ناقص قابل تکمیم هست یا نه؟ نایه بعد بله مخالبینشون می‌کنم نه چون نه احلاس طریقیت رو منکه بود دقت بکنه مثلا بگه اگه شک بود یه ناکه بیاد به اصطلاح شارع او رو به منظور یقین قرار دیگه تو شک دارید در نمازو این بام بسار لیکن چون استثاب هست؟ تو یمین یعنی داری به نماز رو مثلا نماز جمعه, مثل در جمعه. خود ناینی نا محترد است که در ظرف شک کشف ممکن نیست شک هیچ کشف نداره مخالفین مرمون ناینی هرمشون اینه تصمیم کشف زیاده کشف فهم می کنیم <تصمیم>, تصمیم و غزوح مثل اخت غزوحه تصمیم و تلیجیت مثل اخت تجریجه شما میفرمایید جعل تاریخیت معبود نیست چیزی که اصلا تاریخیت نداره صرف صفر به لحاظ تاریخیت و کاشفیات صفره این جور جعل کاشبیات نیست که قبول دلیل شما اما ناقص رو میتونه تکمیل بکنه اون اشاره شده این که تاریخیت یک مفهومی است که قابل جعل نیست بین صفر و بین 80 درجه افتاده اینطوری چون قابل جعل نیست اگر در صف درجه قابل جرمی در 80 درجه هم قابل جرمی اگر نمیشه صف رو بر با ایجاه کرد تو 80 درصد هم نمیشه ایجاه کرد ولی ازا اگر برسر هم گفت حجت هم نسید که جرم جوز هم باید به چیزی دیگری برگرد نمیتونه معنای جرم و حجت هم حتی شما شک نکنید این شک نکنید این نوع عدبیاته واقع قانونی نیست در واقع قان کشف و توریهیت و وضو و این هر نه ابتداه قابل ایجاد نه تکمیلا قابل تقسیمه ان این, این بحث رو دارم ذرا اشکالشان هم همین بود که حالا ما بیشتر توضیح میکنیم که دیگه ان شاء الله ان خواهد آمد که مختار اینجانب همینه است این است که حجیت برای کشف نیست و همشاره که ایجاد کشف معقول نیست و تعبیر خود ایشان کشف مقوله نیست که قابل تقسیم باشه اگر جایی هم آمد مراد جدی چیدی ریالی باید باشه حالا اون مراد جدی چیه؟ این شما به هر حال من فعلت نمیخوام وارد منعبشه با مبانی مرمون های نوشیم حلای ایشون مجبول رو خود وجیهت میدونن به معنای ایشون یک کماحوال مختار این که ایشون یک کماحوال مختار مرادشون اون مبنای ایشون در وجیهت معنای تصمیه کشفه که مبانی حجیت رو باید همیشه در ذهن شما حاضر باشه که از مبانیت مبانیت اساسی و حصوله هم بین ما هم عهد سندر مسائل خودش هم مسئله اساسی آثار یکی برش فرق تختیف شده مثل مثل تصیب و تختیف و اجزاء و تاروز و خیلی آثار فرق تمام این آثار فرق است داره اصل تصویر حجیت این که حجیت رو بازمی خیلی کار کردی چیزی نیست که مثلا یه روز ما ببین تمام بشه بگیم. این یه چیزیست که تمام به اصطلاح مواحظ و اصول و فرمه ما برگو مفتنیست بل این که میگه چون تریجیت در نقول و به سهت جعله ها تریقیت نیست مثلا تریجیت قد وقتی ایشان اونجا گفت ذاتی حالا من نیمی این اصطلاح اگه چنین جابجا‌ایم به کار معنی اومده چیزی اصطلاح دار نیستن در اون بالا گفت با طریقیت ذاتی بعد اینجا میگه طریقیت قد من لوازم ذاتی قد جوزه لوازم ذات مثل زوجیت اربعه برد بچن حنیته فان یقول انها عین القد اصل طریقیت چیزی نیست که این دفعه میگه ذاتی ذاتی خود به اصطلاح داره یا در کتاب گوار عیسا جوجی به احسا کلیات خمس جنس و فصل مابل اشتراک و مابل افتراب و در کتاب برهان در صناعات خمس هم به معمه ما به احسای اون تظامن سلوز مثل امکان از ممکن. این که ذاتی بودن حجییت، طریقیت کدومیه باشه واضح نیست در اینجا ایشون تعبیر به لوازه کرده برده و مثالش هم داده به زوجیت ارائه، به زوجیت ارائه. مثلا تحبیرشون لازم زاد که زوجیت که انقسام علم متساویه. زوجیت یعنی قابلیت انقسام به متصابیه اگر قابلیت این قسام رو به ارگر در نظر بگیریم زادشه زادی اوست لوازم زاده با قول آئیم ولیکن درد بر, بر یه اصلاف و انیوهاد این رو هم دارن که انها این وقت بحث ذاتی لوازم زاد این هفته ها مطرح نیست اینه هسته هیچ فرد نمی کنه در حقیقت تریفیت و قرد یک واقعیت دوتا نیستن حالا بعضیا به جای تریفیت برداشتن بردها کاشفیت و کشف ناشتن نمیشتن به این تعبیر کردن گفتن کنون به اینه کشف نگیم کاشفیت ذاتیه قطعه یا از کشف اینه قطعه این یک مطلب یه مسئله دیگه که ایشان در اینجا به اون کرده، همون قاعده معروفی در معروف ثابت شده اون که کل ما بره از دابو در نیمتره یه اعلام ما به ذات ایشان این قاعده اینشان میگم ما چیزی رو در شعید بیرونه هجم که ذاتاً قص آور نیستن پس هجیت و کل هجت به قصد و هجیت و قصد نفته بعد ایشون بخونه رعبار از این اخراب تریحیت کلدشه ای ای در تنتهی ای و تریحیت ای لابو در تکون زادی یه لباس تریح ال به زادی و, و که مرادشون زاد و دردشون چون ما خوابیم مطابقیشون رو اجمالا ارزو کنم پس یک ایشان حالا یا تعبیر به یا تعبیر به یا تعبیر به لباس ذات راجع به تریحیت تروندن بعد این مطلب دیده که اینکه, اینکه گذشت و بعد فرمان ولا یسف و اطلاق و لحجه این مطلب را از شیخ هم فرمودن، من از دوات شیخ مخوندن یادم در مختصر شیخون گرد کرد هم همون حرف شیخ رو تکرار فرموندن فعندن حجته به اصطلاح منطقی از کردن در کلمات شیخ فقط آمده حسب الى اصطلاح نگفت منطقی این شرار شیخ در حقیقت وستان مراد شيخ منبری همین مطلب رو گفت شيخ اما تعبیر منطقی نکن الوسط الذي يكون بينه وبين الاكبر حالا من یعنی نگاه خیلی مولانا وقتی معناوردن وقتی اجمالا وقتی بگیم هذا خضر خم هذا خمر وقتی درس پیدا میکنیم خمر بگیم هذا خمر و كل خمره يجب الاشناب عن مراد ایشان الوت است یعنی خمر الاكبر مرادیشان ال اكبر در اینجا یجب الاجتناب Rules الذی یراد و اضباطه للا اصغر مرادیشان در مر اصغر هادا هذا هادا یجب الاجتناب خوب الوقتالذی یکون و بینه و بین الا اكبر که محموده اون حد وسطه یکون بینه و بین الا اكبر الذی یراد و اضباطه للا اصغر الغتون و ربتون سبوتید یا قلقه ای باید باشه یا باید تلازم باشه معلول به علت باشن علت معلول باشن. معلول به جه علت به علت به معلول و یا مثلا معلول به علت واحده سواء امکان رو وسط علتن به ثبوت که اسم که نمیز یا معلول که بران لمی در ترمونه که قد بین این معنی و جدیزده های سهنی قرد رسطن فرقی معلوم فلای قال حالا کل خمری و کلو معلومات خمری یه جبال اجتماع بارن از معلومات هم یک میکنن این کنه خمره من میکنن لایت کن و وجود اجتناب لمیه پرد که شرعن على معلومات خمریه بر از خمره واقعی برد نه نه کلام صرف قطعه خریفی تا برد بعد ایشون میفهمن. این تا اینجا شیف این مطلب را هم دارن تو رسائل که ایشون فرموندن شیف هم فرموندن همین مطلب را فرموندن تاكيد کلمه منطقی رو اضافه نکرده بودند. فرماندهی صحیحه شنید. من... صلاح نیست. حسب الاصطلاح. مالك؟ ولی اون دسته که علم منطق به انسان. لكن مرحوم البته مرحوم شیخ اضافه کردند که به این معنا به بقیه امارات میشود فج. مثلا بگیم حادثه ماقامت البینه على حرمته، على نجاسته و کل ماقا مثل بیانه سعلا نجاسته فاوه حرام فاوه حرام این رو شعر داره ایشون نیباردن در اینجا بعد این محلی دیگه که ایشون اضافه داره مرموی نایمی اینه کمالا یکونو حجتاً به اصطلاح اصولی ایگه در حتب اصطلاح اصولی هست خب چرا؟ چون حجت به اصطلاح اصولی عباراتون عنال عدلت شرعیه خب دیشون این ها تجهش کمان استدلال ببرمان همی گفت شرعی خب چون قطعیشون عقیقی روزن دیگه جوی برس میدید چون با شرعی باشید مند طرق ولی امارات الکی تقع و وسطن لی اثبات متعلقات ما و حسب جهل شرعی دقیق کردیم مندون انیقون بینه ها متعلقات یا ارغه نمیخواد مثل وقت قیام که ارغه نمیخواد به رجعه نمیدن در عبارت مرحوم نایمی نکاتی آمده علاقی تقع و وسطن معلوم شد که عدل شدیه مثل خبر و یا بیانه وسط واقع میشن لیکن لأثبات متعلقات ها متعلقاتی یا مثل اثبات حرمت یا اینها این اثباتن به حسب جهل شرعی مرادیتون از جهل شرعی در اینجا چیه؟ همون نقطهی که الان عرض کردن تطمیم کشفه تصمیم طریقیت یعنی شارعه با تصمیم کش فرمودن که اگر بیانه گفت این نجته شما بیانه آمد که این بوله حالا به محامت بیانه علا بولیت و کل محامت بیانه تو علا بولیت کلما بیگن من پس محامت علا بولیت پر رو بولن فیج با دشتراب هم پس مرحوم نایمی طرق شرعی رو به اصطلاح حجت و اصولی می دونن فقط منطقی نمی دونن چرا همون قیاس هر همون کبرای کلی هر اش... نقطه شقدر اینه در اینجا رابطه بین حکش و و حد رسل. این رابطه رابطه قلقه سقوطی نیست این به جهد پس اگر رابطه شد ارتباطشون واقعی شد مثلا الالا متغیر و کل متغیر حادث اگر واسطه ثبوتی شد در اینجا بگیم مثلا حجت استدلال بناده اگر این رابطه ما بگیم اصطلاح حد وصل این رابطه شرعی شد اینه بگیم اصطلاح رو مثلا بگیم حرمت و لحمه العرب به مادل خبر و صغر لحمه العرب به مادل خبر و صغر و حرمته و کل ما دل دخال راستگلاره گرمتر فضای حرام و سلامال اعراب حرامی شکل شکل منتهد امکیاست. و از نکتهش اینه، اون رابطه وینه اوسات وینه اجبار رابطه واقعی نیست، اگر معلوم نیست جالیه. و کل ما دل دخال خبره علاو تهیمه حرام، این کل ما دل دخال خبر خبر است علاو تهیمه فضای حرام. این رابطه شون رابطه موضوع مرمون این رابطه رابطه اعتباری جهلی اون جهلی کرده اگر اون جهل نکرده اون رابطه میسید اون میسی روشن شد پس ایشون میفرمان مندون من علیقون بین آبین المتعلقات اون سبوتیه به وجه همین از وجود سر پس حجت در اصطلاح اصولی به تعبیر نائمی از یک جهل شبیه حجت منطقیست لیکن خارقشون اینجا هست در یک جا رابطه بینشون ارقه هست در یک جا ارقه نیست بعدیشون فهموند چون متعلقاتش اگر از موضوعات خارجی باشه که مجت رش میشیدن و ارده معنی مجتی هست من دارم بله اصلا هست بعد دیدیم بعد ما چیه هست مساله بله بعد جده دیم بله که ما فلنه کم دکنیم ببینیم چیه بعد بفرمای متعلقات این امارات از اصلا این یه تفصیلیت از وجه که فقط شامل امارات بشه یه تفصیل دیگه هم واسه اصطلاح و اصولی در وجه نیه که شامل و اصول عملی هم بشه اینجای که اصطلاح نبکار نبود این اول یه اصطلاح دیگه هم در وجهت و اصولی هست که تکامات نوز زرد بشن اگر رو ماناواژی نکنیم یه اصطلاح دیگه هم در اصطلاح و اصولی هست که شامل قطع و امارات و اصول عملیه میشه. مندان یهماشا این ندانم چند روز صحبت میکنیم کنیمیم حال توزارتون خوب نشیم. پس بنابراین صحبت سر اینه که در اصول در حقیقت چند اصطلاح در مجه هست یه اصطلاح و اصولی همین که الان خو بی معنی نه شامل قتل میشه نه شامل اصول عملیه یه معنای دیگه حجت در اصطلاح اصولی شامل امارات و اصول عملیه میشه یک معنی سومی که ویروس خوندی ماده واز مرماوزی رو خارج زیاد ندادین ویروس خوندی حجت به یک معنای شامل قتل و مثلا بگیم قتل حجت چون اصول امارات هم حجت استثناء موجب اصولم مجردن فهم نمی‌کنم مثلا نه به حجت رو به یک معنایی به کاریم که شامل حرسه بشه ما شما توضیحا ارز کردیم شرارا میرایم ما در حصول حجت به یک معنایی دیگه هم بیمیم که کلن باید معنامه خالفه این اینم در اصطلاح و هست اون حجت مرار مسادر تشریف اصلا بگیم سنن پیغمبر حجت هست سنن مرده اونسا اصلا اون رفتی به این حجت نداره تمام اینها با این ستا در مقابل اون اسطلاح و کراراً ارز کردیم حقیقتاً موضوع علم و اصول حجت به معنی آم آمه خلاصه برد به جه این بحثی طولانی ما ارز کردیم سبوتی ازبادی اصولاً اصول برای این تدویم تو نه حجت به امارات نه حجتنان امارات و اصول پسیه به حجت به معنی متادر تشریع این نسبه اصول یک هجه به معنای مایونجو با تنجر، منجر این هم نفتیل یه حسور روی اگر هجه از آز, از این راه مایونجو سبباً لتنجر، تعدیر سبباً لتنجر اگر از این راه بارد شدین شامل قطعاً میشه شون با قطعاً تنجر سکریف میشه شامل امارات هم میشه شامل رسول عملی هم میشه چون الان من عباس منمون خودم باید یاشتش مخصارا خدا نکر این حد توضیح میدیم پس اصولا خلاف این مسترعنه این ایشان به نظر ما خیلی نازده اون اصطلاح سقیل این است که بخص از موضوع اصول حجت نه عدل عربه هی که نوشن عدل عربه هم نیست که نوشن عدل, هم که عدل اون اصطلاحی که به کار بردن می فقط باید خوضیح داریم که این حجت دو ت یکی به معنای مسادر تشکیه ها سندجو. سندجو رو بده حجت شما حجز سبوتی ها رو نمیدون یکی به معنای مایون و تنجز تنجز تدریق پس بسا حجز داریم کل اصول هم این جزا و من هم بده اصولی هم تحریح این حجزه این تصوره ما که بحث روشنه این تصوره آدن یه مقداری به نظر من ابحامها و تعملاتی رو داره این حالا من عبارت نسوم رو برای احترام بزرگان تا مدتی عبارت رو بخواهیم لابلا شن مناقضات مختصری تا در آخر نتیجگیری خیلی راحت باشه. بعضیشون میگه که واضح نیست واضحه که حلوهه نیست بعد الاخر بعضی شون میفرمان که البته اینجا مرموم آقای آزی های خاشه طولایی دارن که اینجا در خوندن اون مصاله با آزی در نیجا متعرض دیگه اینجا بله ایشون در اینجا دارن منحونا یز هم در این صفحه هشت لا یسف و تعلیف و قیاطر حقیقی من علی عدلت شرقی, شرقی مند بل صورت قیاطن اشبه به مغالته اینجا ظاهرم مرادیشان نقیه شیلی ازوان از آخوا، او عال plea چون در حضله و امارات شرقی میتونیم قیاس تشکیل دیگیم بگیم هاداون من از البیانه علان اجازته و کل ماگام از البیانه علان اجازته یجب و استناب آهند فهادا یجب و استناب آهند این قیاس نیست و لذا اشون بگی فقوله که هادا مغنون و خمیه و کل مغنون و قریه یجب و استناب آهند فهادا یجب و استناب آهند قیاس سوری لا واقعه له یا صوری لا واقعه له. این لذیع جور است نه و واقعی، لام مزمن خم دیگه. و این نماکان یعنی از نظر از این اشکال ما بعدم خواهیم و واقعا این جای سوال داره که چطور شکل از الله نصف فرمیه؟ در مورد امارات و عدل شرعیه صرف و جمع میشودش کرد این صحبه خیلی عجیبه مثلا حاضر مثلا حرمت الحمل ارنه قام خبر السقه و به خبر السقه مثلا نحمل ارنه و خبر السقه علا قرمته و کل موارد خبر السقه علا قرمته فهو حرام این کل مواره هیچ تلازم نیتونی این خیاض قرار به تحبیل این به جهل شاق شرعی طور بود واقعی نیست حالا غیر از مسالی که کن یکون من قبیل المعرف و الواسف اثبات فقط مندون ان یکون واسف سبوت تأثیری در قلقه سبوتی نداره و معهو اگر رابطه سبوتی و قلقه نید لایست خود تحلیخ و قیاس حقیقی من هو الا به نحو من التحلیم به عنایت جعل شاره از زنده طریق رتخر، مثلا خبر ضرراران مفید بهحق مفید به مثلا اصول به واقع و م وقع و به خللااف قتن نه و لاییت و جهده بود و سطا به بچه منم وجود. این هم یک مطلبی که ایشان با مومشهید مناقشه فرده. یک مناقشه دیگه که هم مرحون ننی یا منهننا لایت هست تا حالا با هم من اینمراد ایشان از من اوننا هست، چیه؟ نمیتره باید. واقعا چیزم نمیشه. حسن که ارض کردم مرحوم شیخ در اول رسائلش رسائل, رسائل مقتولی کتاب خبری که نداره. این به مقاصد سلاسه هست. مقصد اول دوم سبون. توضیح دادم کلارم رو مرارند در اصل نوشته شیخ مقصد اول دوم نیست. اصلا این چهار که رسائلش جدا بودن. ایش رفتی به هم نداشتن. بعدها که این جمع کردن این کلمه محصد اول اضافه کرده بعد از مرحوم شیخ اولی اولیشان که قصد بود این آمد و امارات محصد در اومان زن بود بعد در کتاب کفایه محصد ششم شد توضیحش اعرض کرده مرحوم شیخ این لنجم حالیم اصولا هر این حصابار ما اصلا مسائل قط اصول نباید بیانم این هم باید بست دی. که آیا مسئله حجر قدر جزو اصول هست این اصول نیست و منحونا زهره انده مسئله حجر قدر لا تکنید مسئله این اصول چرا؟ چون زابطش این بود کهانل مسئله تو اصولیت ها. این مطلب رو چند بار خوندیم از کتاب محوم اصلاح خوندیم از کنگه این مبنای محوم نایی نیست هر ای که تک اینجا میشون نافذ آوردن از که این محجب کامل برمون نایینه کلو مسئله تفعه نتیجه تو ها کبرا فی قیاس استنباط حکم شرعی و فرعی کلی و, و تمام بود. چند بارم چندان یه تکرار نکنه. ایشون فردن میار اینه مسئلت و مسئله تو حجیزو قبل دیست از کداره فر وحر انمو لایستا خود اصلاق به اسطلاح اندلیزان ولا به اصطلاح اهل اصول و بلکه ما با فرقه اضطریقی اما قطع موضوعی یوسلا بر عليه به معنی که بعد ایشون توضیح دارن که بعد چون در وقت قطع فرعی و موضوعی اساساً کاروان در اونجا خواهید گفت ایشون میگه بله بلکه اشبه به حجت به اصطلاح منطقی در این مباحثی دارن که شاید بعد متعرض شدن الان که جای تعرض نداره این خلاصه مطالبی بود که تا اینجا مطرح شد آخران هم در کلمات مرمون نایی نتیجه ازیدی شد که حتی مسئله حجی اولا حجت نیستن نه به اسطلاح منطقی و نه به اصطلاح اصولی. و علا کل تحبیر جز مسائل اصول هم نیست در قطع تاریخی جز مسئله وصول نیست بله اگر قطع موضوعی باشه اشبه هست به اصطلاح اهل منطق و مازم مشکل بحث اصولی بودن و نبودنش به جای خودش خواهد نینیم این خلاصه مطالبیش این روز بخواست این نوران رو هر پاره به کلمات مطالب سلمات برمو آزیارو که دیگه وقت نشد